بسم الله الرحمن الرحیم کتاب تصريف الزنجانی بحث فعل امر تمام شد در این درسها ها چند قاعده صرفی رو توضیح بده و أنه انه اذا اجتمعت تاانی فی في اول المضارع في اول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل وتفعل فيجوز اثباتهما نحو تتجنب وتت تتقاتل وتتدحرج ويجوز حذف أحدهما تخفيفا كما في التنزيل. <تصفيق> بذرة ورًا أم مزيد. هل أشى ربایی چه سلاسی اونایی که در ماضی تا دارن خودشون مثل تفعله یا در ماضی تا داره در مزاره بعضی سیغه ها که ابتداشون یا میاد مثل تفعله یا تفعلو یتفعلون تفعلانی تتفعلو اما این سیغه هایی که حرف مزارهشون تا هست با اون تا میشند تا مطاوعه دو تا تا تفعلا یا تفعلو بل دو تا تا دارند تتفعلو میگه اون فعلهایی که به عبارت دیگر زمانی که دو تا تا با هم جمع شوند در و این در چه بابه های پیش میاد؟ در باب تفعل تفاعل و تفعلل تفعل یتفعلو تفعل یتفعلو تفعلل یتفعللو تتفعللو میشه اینجا یک ای رو توضیح میده میگه جایز هست اینجا که ما هر دوتا تا و ثابت میگه داریم و جایز هست که یکی از آنها رو به خاطر تخفیف حذف کنیم که ما في التنزیل همان که در قرآن این کار شده است. فانت له تتصدى وليشده فانت له و ونار تلظا اصلش بوده تتلظا تنزل الملائكه خب ملائكه فاعل هست فائل, هس فائل مؤنث باشه فعلا باید معنس باشه اگر این فعل ماضی می بود کنین می بود تنزل تتنزل ماضی شد تنزلت الملائکتو اما مازی نیست دومن مازی ماضی بر برفتح هست این زمه داره تنزل الملائکتو والروح خب پس این ای قاعده هست تقدمو تقدم مزارش میشه یتقدمو يتقدم، يتقدماني، يتقدمون تتقدمو حالا ما همین تا رو یکی از این دو تا رو حصف میکنیم البته این اختلاف هست در نظر کوفی ها و بسری ها که آیا ما این تای علامت مزارع، حرف مزاره رو حصف میکنیم یا تای متاوعه تای متاوعه رو یعنی حرف دو، تای دومی رو فعلا در این سطح این کتاب مهم این است که ما یکی از این دو تا رو حصف میکنیم جایز است که حذف کنیم پس بجای که بگیم تقدم المرأتو میتونیم بگیم تقدم المرأتو مثل تنزل الملائکتو این بود قائده اول قواعد چند تحسن که آورده دو قائده بعدی رو هم توضیح میدم و ومتا کان فاؤ افتعل صادا او ضادا او طاعا او ضاعا میگه هرگاه فاول فیل فیلی که بر وزن هست بر وزن افتعال هست فاول فیلش یکی از این چار حرف بود ساد ولو چون این تصویری نیست که برای توضیح بدم لذا توضیح میدم ساد صابون باد بادی که مثل ساد هست و نقطه داره مثل بالین یا تا تای دستدار یا غای دستدار خب اونایی که تجهید خوندن با تلفظ اینا هم تشخیص داده میشند ولی اکثرا دانشجو و دبیرستانی هستن خیلی ها لذا توضیح دادیم هرگاه فاعل فعلی یکی از این چهار حرف باشد ساد، باد، پا و ضا مثل صلح، صلحه فاول فیلش یعنی حرف اولش صاد هست ضربه زربه با بعد بالین هست با بعد بالین هست با بعد یا طرادا فالفینش تاء دستدار هست یا ظلمه فالفینش ضاء دستدار هست این چهار مثال هرگاه اینا به باب افتعال ببریم و متى كان فاء افتعال صادا او ضادا او طاعا او ظا قلبت تاءه طاعا همین طای باب افتعال تبدیل به طای دستدار میشه خب اج کدوم تا این تای باب افتعال تای دو نقطه هست؟ ولی اگر کلمه ای که فعول فلش ساعت با تاوضا ماننده سالح، بابه، تاراده و قمه به این بابش ببریم دیگه تای باب افتال تبدیلی به تای دستدار میشه؟ موقعی که بگیم طلها دیگه با تاید دو نقطش نمی نویسیم و نمی خانیم میگیم اصطالحه ضربه رو هم ببریم میشه اضطربه طرده رو میشه اضطرده و ظلمه میشه اضطلمه این قایده دوم کتاب بود هر رفع الفیل فیلی یکی از این چار حرف بود و اونو بردیم به باب افتیال. افتعال دیگه تای باب افتعال تبدیل به تای دستدار میشه ما در اج تمع میگیم اجتماعه با تای دو نخته. چرا؟ چون فاولفلش جیم هست جمعه هست به باب افتعالش ببریم در ماضی میشه اجتماعه در مزاره میشه یجتماعه مصدرش میشه اجتماعه اما اگر ظلمه رو ببریم که فاولفلش ضاد هست یکی از اون چار حرفه میشه او طلمه مزارش میشه یظقالیمو مصدرش میشه اضطلام و کذالک سائر متصرفاته و همچنین هست سائر متصرفاته سائر متصرفات پس باب افتعال همچنین هستن یعنی تا تبدیل به تا میشه در تا چه در ماضی باشه چه در مزاره باشه چه در امر باشه چه در اسم فائل باشه چه در اسم مفعول باشه در تمام متصرفات زمانی که فعلی که فعول فعیلشی که از این چهار حرف بود تا باب افتعال تبدیل به تام شود در تمام متصرفات نحو مانند اصطالحا یا اصطالح و اصطلاحا فهو مصطلحون این مصدرش بود که اسم فعیلش اما اسم مفهولش مصطلح امرش میشه طالح پس این بود قاعده دوم کتاب تصریف زنجانی در بحث قواعدی که انشاءالله توضیح می دهد اگر تصویری می بود که خب راحت براتون روی تخته می نوشتیم و تاید دستدارو رو تبدیل تاید دو نقطه رو تبدیل به تاید دستدار می گرداندیم امیدوارم که الله متوجه شده باشید موفق و پیروز باشید